فصل سیزده هم. یادگیری از مربی ها تو باید سرت را بالا نگه داری و هایت را پایین بیاوری مهم نیست دیگران چه می گویند. به آنها اجازه نده که تو را آزرده و خش کنند سعی کن با فکرت برای تغییر بجنگی آتیکوس فینچ در کشتن مرغ مقلد هارپرلی در فصل قبل در این باره صحبت کردیم که دو نوع یادگیری وجود دارد یادگیری از طریق مطالعه و یادگیری از طریق انجام دادن اما نوع سوم یادگیری هم وجود دارد که البته بهترین آنها نیز هست چرا که به کارگیری این نوع یادگیری آن دو نوع دیگر را به صورت چشمگیر و شگرفی شتاب می بخشد. این نوع یادگیری شناخت از طریق الگو است. در سراسر تاریخ بشر و بسیار قبل از اینکه کتاب ها،, ها یا حتی برنامه های آموزشی به وجود آیند فقط یک راه درست و تایید شده برای یادگیری یک مهارت، صنعت، هنر یا حرفه وجود داشت. یادگیری از یک استاد.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 یادگیری اطلاعات صرف کافی نیست و در حالی که اضافه کردن یادگیری میدانی که از بکار بستن آن اطلاعات در تجربیات شخصیتان به دست می آید می تواند موجب پیشرفت شما شود اما آن نیز برای دستیابی کامل به اهدافتان کافی نیست. شما به راهی نیاز دارید تا بتوانید همه ی آن اطلاعات و تجربیات را پردازش و یک سازی کنید. و فقط یک راه قابل اطمینان و معتبر برای انجام دادن این کار وجود دارد شخصی را پیدا کنید که پیش از این در حوزه مورد نظرتان به مهارت دست یافته است و رفتارتان را از تجربیات او الگوبرداری کنید پیشرفت شخصی چیزی نیست که بتوانید با پشت میزنشینی دنبال کنید یا بتوانید با حاشیه ماندن و بدون درگیر کردن خودتان در آن مهارت پیدا کنید پیشرفت شخصی مانند یک ورزش گروهی است که در آن شما با افرادی ارتباط دارید که می توانند در سفرتان به شما کمک کنند. چیزی که در اینجا درباره اش ای صحبت می کنیم قدرت یک مربی است. مردی که من را باور داشت. تا قبل از بزرگسالی در هر کاری که انجام میدادم صرفا فردی معمولی و متوسط بودم. نمره های متوسطی میگرتم توانایی های جسمانی متوسطی داشتم مهارت های هم در حد متوسط بود و در هر چیز دیگری نیز آدم متوسطی بودم. وقتی که بعد از روز انزجارم در زمین گلف دیتونا دوباره به سراغ ادامه تحصیل رفتم دیوانوار تلاش میکردم زیرا میدانستم تنها از طریق تلاش و پافشاری محز است که میتوانم در هر زمینه ای فراتر از حد متوسط باشم. و همانطور که گفتم این موضوع موثر واقع شد و نمره های عالی گرفتم اما هنوز هم خودم را آدم متوسطی میدیدم. هنگامی که در فرودگاه آلبوکرکی مشغول کارآموزی شدم دیدگاه هم در این باره که آدم متوسطی هستم شروع به تغییر کرد. البته این تغییر فقط و فقط به یک دلیل اتفاق افتاد. مردی به نام کلاید شیر. کارم خیلی جذاب و مهیج نبود. تمام طول روز را پشت میزی کوچک در گوشه اتاقی بسیار کوچک در پشت ساختمان اصلی فرودگاه مشغول محاسبه اعداد و ارقام بودم. گمان نمی کردم که حتی کسی از وجود من در آن اتاق بسیار کوچک با خبر باشد. یک روز به دلیلی که هرگز متوجه نشدم، آقای کلایدشیر به کنار میزم آمد و از من دعوت کرد که اگر دوست دارم با هم یک فنجان قهوه بخوریم. کلایدشیر رئیس فرودگاه بود او شخص با تجربه و فوقلاد موفقی بود که در دهه ششم زندگیش قرار داشت رئیس فرودگاه یک مقام انتصابی بود به این معنی که او فرودگاه را اداره می کرد مدیریت بیش از 140 کارمند فرودگاه را بر عهده داشت و به طور مستقیم به شهردار و شورای شهر گزارش می داد کلایت هم در آلبوکرکی و هم در انجمن هوانوردی ملی آدم محترم و سرشناسی بود البته که او را میشناختم. در طی ماهایی که آنجا بودم، هر از چندگاهی در راهروی اصلی و فرودگاه از مقابل او رد میشدم و به او سلام میکردم، اما هرگز هیچ نوع مکالمهی با هم نداشتیم. حالا او رو من ایستاده بود و از من میخواست که اگر دوست دارم با هم قهوه بخوریم. میدانستم که باید پاسخ ای بدهم، بنابراین گفتم باعث افتخارم است. ما به سالن استراحت کارمندان رفتیم و به اندازه زمان خوردن یک فنجان قهوه با هم صحبت کردیم. خیلی زود از همدیگر خوشمان آمد. ما آن قرار خوردن قهوه را به رویه هفتگی تبدیل کردیم و سپس از هفته یک بار به هفته دو بار، یک روز در میان و سرانجام به رویه روزانه تبدیل شد. این دونه بود که آقای کلاید من را زیر پرابال خودش گرفت. در زندگیم اولین باری بود که احساس می کردم کسی من را تایید کرده و یک شخص با نفوذ من را پذیرفته است. همین موضوع به طور ناگهانی دید دیگران را در مورد من تغییر داد. می شنیدم که کارمندان فرودگاه می گفتند چرا آقای کلاید به این بچه دانشگاهی علاقمند شده است؟ چه چیزی در او می بیند که ما نمی بینیم؟ شاید ما هم باید نگاه متفاوتی به او داشته باشیم. از آنجایی که آنها به تدریج به صورت متفاوتی به من نگاه می کردند، من نیز خودم را به طور متفاوتی دیدم و در نتیجه به شیوه متفاوتی رفتار کردم مانند فردی ارزشمند، فردی که آینده خوبی پیش رویش قرار داشت آقای کلاید متوجه شد که من علاوه بر کار کردن در فرودگاه به دانشگاه نیز می روم و درآمد بسیار اندکی دارم بنابراین بعد از مدتی شغلی به نام سرپرست شب را به وجود آورد و آن شغل را به من پیشنهاد داد سرپرست شب به این معنی بود که می توانستم شبها به تنهایی در فرودگاه بمانم و از آن زمان استفاده کنم تا تکالیف درسیم را انجام دهم کارمندان بخش مدیریت ساعت پنج بعد از ظهر تعطیل می شدند اما من ساعت چهار بعد از ظهر در فرودگاه حاضر می شدم و تا نیمه های شب در آنجا می ماندم واقعا هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداشت جز اینکه در برخی موارد کارهای اتفاقی پیش می‌آمد که البته آن هم به ندرت اتفاق می‌افتاد سرپرست شب اساساً به این معنی بود که حقوق می‌گرفتم تا تکالیف دانشگاه هم را انجام دهم همانطور که ارتباطم با کلاید بهتر میشد، از طریق ارتباط او با رؤسای بخش امنیت، تعمیرات و نگهداری و تدارکات نیز آشنا شدم بعد از گرفتن مدرک کارشناسی، به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مشغول شدم و کار در فرودگاه را نیز ادامه دادم. سرانجام، هنگامی که زمان تغییر مدیر فرودگاه رسید، کلاید من را تشویق کرد که برای تصدی شغل مدیر فرودگاه داوطلب شوم. پیشنهاد او را پذیرفتم و در میان انبوهی از دافتلب دیگر من بودم که آن شغل را به دست آوردم. اینکه جوانی 23 ساله مدیر فرودگاه بینالمللی آلبوکرکی شده بود، پیچ پیچ ها و حرفهایی را در انجمن هوانوردی به وجود آورد. چیزی نگذاشت که شرکت تگزاس اینسترومنت به سراغم آمد. آنها من را به یک مصاحبه کاری دعوت کردند و سپس به ملاقات مدیرعامل فراخواندند. من در شرکت تگزاس اینسترومنت استخدام شدم و خیلی زود مدیر یکی از های شرکت شدم. بعد از تجربه وحشتناکم در فروش در 28 سالگی مدیر بخش سیستم‌های هوشمند شرکت تگزاس اینسترومنت بودم و همه اینها با آن فنجان قهوه شروع شد مادرم همیشه میگفت شر مهمترین شخص در زندگی تو بود و البته حق با او بود او تحولی را دیده بود که به واسطه آقای کلاید در من رخ داده بود تأثیری که یک شخص خاص می تواند در زندگیتان داشته باشد می تواند باشد. آن هم فقط تأثیر اینکه شما را چگونه ببیند و چیزی را در شما ببیند که حتی ممکن است خودتان نبینید. کلایدشر من را باور داشت و به همین دلیل من نیز خودم را بیشتر باور کردم.